سلام و درود به همه شنوندگان خوب و عزیز کانال هزار افسان امروز هم با یک قصه زیبای دیگه در خدمت شما هستم اسم این قصه شاهزاده ویوین و شاهدخت پلاچیداست بریم که با هم دیگه بشنویم روزگاری پادشاه و ملکه زندگی میکردند که همدیگر را از جون و دل دوست داشتند ملکه که اسمش سنتورینا بود خیلی زیباه و خیلی خوشقلب بود و جای تعجب داشت اگر با این صفات شوهرش اون رو دوست نمی داشت. پادشاه گریدرین هم دارای صفاتی برجسته و نیکو بود. پری دعوت شده به مراسم نامگذاریش ارواح همه نیاکان اون رو فرا خونده و از هر یک از اونها یک صفت نیکو گرفته و به پادشاه هدیه داده بود بدبختانه پری به اون قلب بسیار مهربانی بخشیده بود و همه چیز تا زمان مورد نظر ما برای پادشاه گریدلین با کامیابی و نیکبختی همراه بود این که گفتم بدبختانه به خاطر اونه که کسانی که قلب مهربانی دارند بیشتر اوقات به دردسر سر پس نباید انتظار داشت که چون وقت بخت ای همیشه پایدار بمونه چندان طول نکشید که ملکه دختری زیبا به دنیا آورد اسم شادخت کوچیک و زیبا رو پلاچیدا گذاشتند. پادشاه که فکر می زیبایی و طرز فکر دختر با مادرش همسنگه نیازی به محبت پریان نمیدید. برای همین هم به خودش زحمت نداد که از پریان بخواد در مراسم نامگذاری شادخت حضور داشته باشند. پریان از این برخورد عصبانی شدند و تصمیم گرفتند پادشاه را به خاطر نادیده گرفتن حقشون به سختی تنبیه کنند. اول ملکه سخت بیمار شد. پادشاه گریدلین بی نهایت پریشان حال شد. کمی بعد ملکه از بینشون رفت. در واقع پریان اون رو ناپدید کردند. اگر به خاطر شادخت کوچک نبود، بی تردید سر پادشاه هم بلای آوردند. در نبود ملکه و به خاطر زحمت بزرگ کردن شاهدخت پادشاه کاملا درمونده شده بود اما شاهدخت بزرگ شد و خوشبختانه پری مهربان لولوته با وجود تمامی اتفاقاتی که افتاده بود علاقمند شد تا از شاهدخت و همچنین از پسر اموش شاهزاده ویوین مراقبت کنه و اونها رو زیر حمایت خودش بگیره ویوین یتیم بود در کودکی اموش پادشاه گریدلین اون رو پیش خودش آورد و تربیتش رو بر عهده گرفت با وجود اونکه پری در مراقبت اونها چیزی از قلم ننداخته بود هر چی بزرگتر می شدن بیشتر معلوم میشد که آموزش و تحصیل فقط کمبودهای ظاهری اونها رو سر و سامون داده و تأثیر چندانی بر اونها نداشته پلاچیدا که واقعا نظر نظر زیبا بود توانایی و استعداد سرشاری در یادگیری داشت اما به همون اندازه هم تنبل و بی تفاوت بود برعکس ویوین خیلی سرزنده بود و در یادگیری مسائل گیرایی زیادی داشت اما خیلی زود از هرچه که یاد میگرفت زده میشد و سراغ مطلب دیگهای میرفت اون بسیار دمدمی مزاج بود چون این دو بچه به احتمال زیاد وارث تاج و تخت بودند پس طبیعی بود که رئایای اون سرزمین علاقه زیادی به اونها داشته باشند شهروندان سول، دوست و آرام تمایل داشتند که پلاچیدا روزی ملکی اونها بشه و فتن جویان و جنگ طلبان امید زیادی به ویوین داشتند این اختلاف نظر باعث شد تا مردم کشور با هم درگیر بشند حتی در قصر هم این دو گروه غالباً با هم دعوا می کردند اما در مورد خود بچه ها با اینکه خیلی اهل دعوا بار اومده بودند باید بگم اختلاف نظرشون در همه چیز از سلیق گرفته تا عواطفشون ازدواجشون رو غیر کرده بود. این اگرچه تأصف برانگیز بود باعث خوشنودی دو گروه مخالف بود. شاهزاده کاملا از همه چیز آگاه بود اما اونقدر نجابت داشت که دلش نمیخواست اموزاده زیباش آسیب ببینه. البته، بی تر و دمدمی مزاجتر تر از اون بود که بخواد درباره این چیزها جدی فکر کنه یک روز به سرش زد که بارش رو ببنده و در زیر این آسمان آبی ماجراجویی کنه خوشبختانه این فکر زمانی به سرش زد که سوار بر اسب بود پس به قصد خروج از اون قلم رو خیلی راحت سر اسب رو برگردوند این عظیمت ناگهانی ضربه بزرگی به کشور زد کسی نمیدونست که چه برسر شاهزاده میاد حتی پادشاه گریدلین که پس از درگذشت ملکه سنتورینا دیگه به چیزی توجه نشون نمیداد از شنیدن خبر گم شدن شاهزاده ترسید و نگران شد اون دلش نمی اومد به شادوخت پلاچیدا که سیل اشک از چشماش جاری بود نگاه کنه ولی در عین حال میخواست ببینه اون چقدر شکیبایی و استقامت به خرج میده. پادشاه به زودی متوجه شد که علاوه بر تنبلی طبیعی شادخت اون روز به روز ضعیف‌تر میشه. پادشاه که پری رو جای مادر بزرگ پلاچیدا میدونست از اون به سختی به پری لولوته شکایت کرد. لولوته با فروتنی سرزنشهاش رو تحمل کرد و صادقان قول داد که دیگه اجازه نده شاهدخت تنبلی و بی تفاوتیش رو ادامه بده. از این لحظه درد سرهای پلاچیدای بیچاره شروع شد. پری از اون میخواست لباسهاش رو خودش انتخاب کنه. موازه به جواهراتش باشه و خودش رو سرگرم کنه. با وجود درد سرهای زیاد اون لباس بلند قدیمیش رو از صبح تا شب میپوشید تا جایی که میتونست در حضور دیگران ظاهر نمیشد. البته این همش نبود چون پادشای گریدرین اصرار داشت که شاهدخت امور حکومت رو یاد بگیره، در تمامی جلسه های شورا حضور داشته باشه و درباره مسائلی که از اون سوال میشه اظهار نظر کنه. این مسئله زندگی رو براش سخت کرده بود. اون بلولوته التماس میکرد اون رو از کشوری که از یک شاهدخت غمگین انتظارات بیشه ازت دارن دور کنه. پری اول اصلا قبول نمیکرد، اما کی میتونه در برابر عشق و التماس پلاچیدای زیبا مقاومت کنه؟ بالاخره اونچه اون چه باید میشد، شد. پری شاه شاهدخت رو در همون وضعیتی که بود یعنی لمیده در تخت مرد علاقش به خانه قاری خودش برد. این مصیبت تازه تمام مردم رو در اندوه فرو برد. گریدرین بدتر از قبل مثل دیوونه ها در هر طرف سرگردان بود. حالا بریم سروقت شاهزاده ویوین تا ببینیم روح ناآرام چه بر سرش آورده با اینکه قلم رو به پادشاه بود اسبش اون رو شکوهمندانه به انتهای اون سرزمین رسوند اما دیگه نتونست جلوتر بره شاهزاده مجبور شد از اسب پایین بیاد و پیاده به سفرش ادامه بده هرچند که این پیشروی کند شدیداً حوصلش رو سر برده و اون رو خسته کرده بود بعد از مدتی که به نظرش بسیار طولانی اومد، خودش رو در جنگلی وسیع که کاملا تاریک بود، تک و تنها دید. جنگلی تاریک و دلگیر که وجودش رو از درون به لرزه انداخته بود. البته، اون مسیری کاملا مشخص و به ظاهر بی خطر رو انتخاب کرد و شجاعانه با سرعت به پیش دوید، با وجود تلاش بسیار قبل از اون که به انتهای جنگل برسه به شب خورد. مدتی افتان و خیزان به راهش ادامه داد تا اینکه به مسیر و به تاریکی عادت کرد کاملا خسته و کوفته شده بود که در برابر خودش نوری دید دیدن نور باعث شد روحی از دست رفتش را پیدا کنه مطمئن شد که به سرپناهی نزدیک شده و میتونه هر قدر به خاط غذا بخوره اما به نظر می رسید هر چقدر به سمت نور میرفت روشنایی دورتر می شد حتی گاهی اوقات کاملا ناپدید میشد حالا میتونید تصور کنید که اون چقدر عصبی و حوصله شده بود بالاخره به کلبهی و داغون که نور از اونجا میتابید رسید ضربه‌ای محکم به در کلبه زد صدای پیرزنی از داخل به گوش رسید اما چون به نظر می اومد برای باز کردن در نداره شاهزاده چند بار دیگه بر در کوبید و آمران دستور داد که در رو براش باز کنه این در حالی بود که کاملا از یاد برده بود که دیگه در قلم رو به خودش نیست. تمام این کارها تأثیری بر پیرزن نداشت. اون بدون توجه به اون همه سر و صدا که ویوین را انداخته بود فقط به آرامی گفت باید صبر کنید. اون میشنید که پیرزن برای باز کردن در کلبه از جاش پا شده. ولی خیلی طول کشید. پیرزن اول گربش رو از پشت در دور کرد. مبادا که وقتی در باز شد فرار کنه ویوین شنید که پیرزن با خودش حرف میزد، اون میگفت که باید چراغش رو تمیز کنه یا اینکه بهتره بره ببینه کی پشت در ایستاده یا چراغ به روغن تازه نیاز داره و باید در اون روغن بریزه خلاصه پیرزن مدت زمانی وقت کشی کرد و گاه به گاه به شاهزاده میگفت که حوصله کنه و صبور باشه بالاخره وقتی شاهزاده پا به کلبه کوچیک گذاشت با نومیدی دید که فقر و نکبت تمام اونجا رو فرا گرفته و هیچ چیز خوردنی پیدا نمیشه اون برای پیرزن توضیح داد که از گروسنگی و خستگی داره میمیره پیرزن با آرامش خاطر فقط جواب داد که باید صبور باشه البته اون دسته کاه برای خابیدن به شاهزاده نشون داد ویوین با سرسختی داد زد اما چی بخورم؟ اون جواب داد کمی صبور باش کمی صبر کن اگر صبور باشی به باغچه میرم و مقداری نخود برات جمع میکنم با خیال راحت میشینیم و اونها رو از غلاف در میاریم و بعد آتیش درست میکنیم و نخودها رو میپزیم وقتی که کاملا پخته شدند میشینیم و با آرامش غذا میخوریم چه عجله ای داری شاهزاده با صدای رقتاوار گفت تا اون موقع از گرسنگی تلف میشم. پیرزن با لبخندی ملایم نگاهی بهش گرد کرد و گفت صبر کن صبر کن من آدم عجولی نیستم بر اثر صبر نوبت ظفر آید حتما این جمله رو زیاد شنیدی شاهزاده ویوین از این اوضا عصبانی شده بود اما کاری از دستش بر نمیومد پیرزن گفت حالا بیا بیا و چراغ و نگهدار تا در نورش نخودها رو بچینم شاهزاده شتابان از جا بلند شد و چراغ رو چنان سری گرفت که خاموش شد روشن کردن دوبارش اون هم با دو تکی کوچک زغال روشن که زیر خاکسترها بود مدتی وقت گرفت بالاخره نوخودها رو جمعآوری کردند از پوست در آوردند و آتیش رو روشن کردند بعد با دقت نخودها رو دونه دونه شمردند چون پیرزن گفت فقط پنجاه و چهار دونه نخود میپذه و بیشتر شاهزاده بیهود سعی میکرد که بهش بفهمونه خیلی گست است و پنجاه و چهار دونه نخود به هیچش نمیرسه و چند تا نخود بیشتر یا کمتر تاثیری به حالش نداره بالاخره مجبور شد پنجاه و چهار دونه نخود بشماره از بخت بدش از بس عجله داشت یک یا دو تا نخود بر زمین افتاد و باز مجبور شد از اول شروع کنه همین که نخودها پخته شدند پیرزن یک پیمانه و این نان از گنج برداشت و شروع کرد به قسمت کردن ویوین دیگه طاقت برد. دست دراز کرد و تکه نان رو گرفت و توی دهانش چفوند و بعد از فرو بلعیدن اون گفت صبر پیرزن مثل دفعات قبل به نرمی گفت داری مسخرهم میکنی. اما اون کلمه واقعا اسم منه روزی چیزهای بیشتری در موردم خواهی فهمید هر کدومشون بیست و هفت نخوت خوردند شاهزاده گیت شده بود که چرا غذای بیشتری پیدا نمیشه اون آروم و راحت درست مثل موقعی که در قصب بود روی سر کاه دراز کشید و خوابید صبح که شد پیرزن به اون شیر و نون داد و اون هم با میل و رقبت خورد خوشحال بود که مجبور نیز دنبال غذاش بگرده یا بشماره یا بپزه بعد از صبحانه از پیرزن تقاضا کرد که از خودش برای اون صحبت کنه پیرزن گفت با کمال میل اما قسم طولانیه شاهزاده با صدای بلند گفت اه اگه طولانیه نمیتونم گوش کنم پیرزن گفت اما آدمی به سنتو باید به حرف پیرترها توجهشون بده و صبور باشه شاهزاده با بی‌حوصلگی گفت اما آدمای پیر نباید خیلی پرچونگی کنند حالا بگو من به چه سرزمینی پاگذاشتم حرف اضافه هم نزن اون گفت تو در جنگل پرنده سیاه هستی اینجا همون مکانیه که اون قیبگویی میکنه شاهزاده گفت قیبگو باید برم و باهاش مشورت کنم اون از جیبش یک مشت در ورد و به پیرزن داد پیرزن از قبول پول خودداری کرد و اون طلاها رو روی میز ریخت بدون اینکه بپرس از کدوم طرف باید بره مثل برق از اونجا دور شد اون اولین مسیر رو که چشمش بهش افتاد انتخاب کرد و با سرعت در اون بر افتاد بیشتر اوقات راه رو گم می کرد یا پاش به سنگی میخورد و بر زمین میافتاد یا از درختی بالا میرفت خلاصه بدون اینکه پشیمون باشه کلبه کوچیک رو ترک کرد به نظرش اونجا فقط برازنده صاحبش بود بعد از مدتی در فاصله دور قصر بزرگ سیاهی رو دید که بر منظره تمام جنگل تسلط داشت. شاهزاده مطمئن شد که اونجا اقامتگاه غیبگوه درست موقع غروب خورشید به دروازه های بیرونی قصر رسید. دور قصر خندقی کنده بودند. پل متحرک و دروازه ها و حتی آب داخل خندق همه به رنگ تیره و مثل رنگ دیوارها و برج‌ها بود. بالای دروازه زنگی بزرگ آویخته بود که در بالای اون با حروف قرمز نوشته شده بود موجود میرا اگر میخواهی از با باخبر شوی این زنگ رو بزن و خودت را به هرچه اتفاق میافتد تسلیم کن شاهزاده بدون کوچکترین تردید سنگ بزرگی برداشت و مثل چکش محکم بر زنگ کوبید از زنگ صدایی پر دامنه و وحشتناک بلند شد بعد دروازه باز شد و بعد از اینکه شاهزاده از اون گذشت با صدای رعداسا بسته شد از هر برج و بارو گروهی خوفاش جیغکشان و نالهکنان به پرواز درمدند و آسمان را با ازدهام خودشون سیاه کردند ویوین از این منظره ناگوار اصلا نترسید و محکم و استوار به پیش رفت تا اینکه به دروازه دوم رسید این دروازه توسط شست بردگه سیاه که ردایی بلند برتن داشتند روش باز شد اون دلش میخواست با اونها حرف بزنه اما خیلی زود متوجه شد که اونها به زبانی کاملا ناشناخته حرف میزنند و کلمهای از حرفهاش را نمیفهمند این برای شاهزاده که عادت نداشت عقایدش رو پنهان کنه خیلی سخت بود احساس کرد که دلش برای دوست پیرش صبر تنگ شده مجبور بود در سکوت به دنبال راهنماهاش بره اونها اون رو به تالاری با شکوه بردن کف تالار از آبنوس دیوارها از کهربای سیاه و تمام پردا از مخمل سیاه بودند شاهزاده به اطراف نگاه کرد تا چیزی خوردنی پیدا کنه اما بی بود بعد با حرکات دست نشون داد که گرسنه است اونها هم به همون روش بهش فهمودند که باید صبر کنه بعد از چند ساعت اون شست نفر سراپا پوشیده دوباره ظاهر شدند. اونها با احترام زیاد اون رو به تالار مهمانی و جشن بردند. در اونجا همگی پشت میزی دراز نشستند. غذاها در وسط میز چیده شده بودند. شاهزاده با تحور همیشگی خودش ظرف غذایی رو که در برابرش بود گرفت تا پیش بکشه. اما زود متوجه شد که ظرف سر جاش محکم چسبیده. بعد نگاهی به دیگران انداخت و دید که هر کدوم از اونها یک نگه دراز توخالی دارند که با اون غذای خودشون رو می مکند. شاهزاده هم مجبور شد همین کار رو بکنه. هر شند بسیار که سالت بار بود. بعد از شام از همون راهی که اومده بودند به اتاق آبنوس برگشتند. در اونجا مجبور شد یک بازی شطرنج بسیار طولانی رو تماشا کنه. شطرنج بازا خسته نمی شدند. اما اون حوصلش کاملا سر رفته بود. بعد اون رو با احترام اما به آهستگی قبل به خوابگاهش بردند. صبح زود به امید مشورت با قیبگو بیدار شد. اولین خواستش این بود که به اون اجازه بدن از وقت خودش آگاه بشه. اما خدمتگزاران بدون هیچ پاسخی اون رو به حسچه ساخته شده از سنگ مرمر بردند. یک سمت حوضچه بسیار کم عمق و سمت دیگهش بسیار عمیق بود. به اون فهمودند که وارد حه بشه. شاهزاده دلش میخواست اول به داخل قسمت عمیق بپره. اما اون رو به آرامی عقب نگه داشتند و اجازه دادن جایی بیسته که عمق زیادی نداشت. وقتی میدید این وز هر روز تکرار میشه و اصلا به حرفاش توجهی نمیکنند نزدیک بود دیوونه بشه. آب هر روز بالا و بالاتر میومد. ش روز در سکوتی یک نواخت و دائمی با احترام زیاد، اون رو به حسچه می بردند و برمیگردوندند اون غذاش رو با نی میخورد و بازی پایان ناپذیر شطرنج رو تماشا میکرد. مجبور بود نفرت کارها رو تحمل کنه. بالاخره آب تا چونش بالا اومد و تونست خودش رو کامل بشوره. اون روز بردگان با لباسهای سیاه هر یک با خفاشی نشسته بر سرش با گامهای بسیار آهسته به همراه شاهزاده در وسطشون در حالی که آوازی غم زمزمه می‌کردند به سمت دروازه آهنی منتهی به معبدی پیش رفتند با شنیدن صدای آوازشون پرندگان دیگری ظاهر شدند و ویون غمگین رو در بین خودشون گرفتند اونها هم دقیقا مثل کسانی که ترکشون کرده بود با اون رفتار کردند حتی نسبت به گروه قبلی خیلی آهسته تر حرکت می و روی مچهر کدوم کلاقی بود که قارقار تند و تیزش در اون فضای ملالنگیز می پیچید. اونها دستهای شاهزاده رو گرفتند و به جای اون که در حقش احترام بجا بیشتر به فکر فرونشوندن ناشکیباییش بودند. با گامهای بسیار کند از پله های معبد بالا رفتند. وقتی بالاخره به بالای پله ها رسیدند، اون با خودش فکر کرد که انتظارش به پایان رسیده. اما برعکس، بعد از اینکه با صبر و حوصله بسیار ردایی سیاه مثل مال خودشون به اون پوشوندند، اون رو به داخل معبد بردند، جایی که مجبور شد مراسم مذهبی مفصلی رو تماشا کنه. حالا دیگه بی صبری اون به خستگی و انفعال تبدیل شده بود. پی در پی خمیازه های تورانی می کشید اما کسی بهش اعتنان نمی کرد. با نامیدی به پرده سیاه زخیمی نگاه میکرد که درست در مقابلش آویخته بود. وقتی پرده کنار رفت اون چرا می دید باور نمیکرد. کرد. اون در برابر خودش پرندهی سیاه دید. پرندهی بسیار بزرگ و تنومند که روی میلهی کلوف نشسته و از یک طرف به طرف دیگه معبد حرکت می کرد. با دیدن پرنده تمام بردگان به زانو افتادند و صورتشون رو پوشوندند. موقعی که پرنده سه بار با بالهای نیرومندش پرواز کرد به زبان شاهزاده ویوین با وضوح تمام این سخنان را بر زبان آورد. شاهزاده بدان که خوشبختیت به چیزی بستگی دارد که کاملا مقایر با سرشت توست. بعد بار دیگه پرده افتاد. بعد از چندین مراسم کلاقی بر روی مچش نشست و اون رو به آهستگی به طرف دروازه آهنی بردند. بعد کلاق از روی دستش پرید و اون رو دوباره به دسته اول بردگان سپردند. همون موقع خفاش بزرگی پایین پرید و روی سرش نشست. بعد اون رو دوباره به حوزچه مرمرین بردند. اما این بار به قسمت عمیق رفت. لازم نبود که در سمت دیگه بیسته تا آب روز به روز اون هم به کندی بالا بیاد بعد از اینکه از قسمت امیق آب بیرون اومد بردگان اون رو همراهی کردند و به دروازه بیرونی قصر رسوندند و با احترام و ادب بیش از حد از اون جدا شدند اون واقعا نمی دونست چطور پاسخگوی اون همه احترام باشه بلافاصله فاصله دروازه باز شد اون به سرعت از اونجا جا عبور کرد و با همه توان از اونجا دور شد فقط در فکر این بود که تا میتونه از اون مکان ترسناک دور بشه اون با بیپروایی جرأت کرده بود وارد جایی بشه و بعد از اجرای مراسم طولانی با غیب‌گویی خسته کننده روبرو بشه و تازه مطلب مهمی هم از اون نشنوه چند ثانیه‌ای به حماقت خودش خندید به این نتیجه رسید که گاهی اوقات قبل از اون که دست به کاری بزنه بهتر دربارش فکر کنه چند روزی سرگردان و خسته و گرسنه بود. بالاخره راه خروج از جنگل رو پیدا کرد خیلی زود به رودخانه عریض و خروشان رسید در امتداد رودخونه بر افتاد تا شاگرد جایی برای گذشتن از اون پیدا کنه صبح روز بعد که خورشید طولو کرد اون دید که چیزی در وسط رود حرکت میکنه که سپیدی خیره کننده ای داره با دقت بیشتری نگاه کرد و متوجه شد که کشتی زیبای کوچکی است که تا اون زمان نظیرش رو ندیده مشتاق بود تا سوار کشتی بشه بنابراین برای جلب توجه سرنشینان کشتی با صدای بلند فریاد زد اما جوابی نشنید در ساحل رود نزدیک خودش قایقی دید فوراً سوار قایق کوچیک شد و پاروزنان به سمت کشتی رفت این کار براش بسیار آسون بود چون سوار قایقی شده بود که از کاغذ سپید ساخته شده بود و شبیه برگ گل سرخ بود وقتی نزدیک کشتی شد دید که کشتی هم از کاغذ سپید ساخته شده و شبیه برگ گل سرخه در ارشه کشتی پرنده پر نمیزد اما در اتاقه که اون بستر کوچک و بسیار نرمی قرار داشت انواع غذاها و نوشیدنیها در اونجا آماده بود اون تصمیم گرفت از خوردنشون لذت ببره اون در دربار پادشاه خوب تربیت شده بود و هنر دریانوردی رو میدونست اما وقتی مشغول هدایت کشتی شد تا به خودش به جنبه جریان آب کشتی رو با سرعت زیاد به طرف دریا برد بادی که میوزید کشتی رو در عرض یک لحظه به وسط دریا کشوند و از خشکی دور کرد اون تازه متوجه خطر شده بود نهایت تلاشش رو کرد تا به رودخونه برگرده اما باد و انواع شدید بودند و کاری از دستش بر نمی اومد. چندین بار به فکر فرو رفت. به یاد دوران کودکیش افتاد که اون را از نزدیک شدن به آب باز می‌داشتند. دیگه خیلی دیر شده بود. آرزو می کرد که در ساحل بود. اما فایده نداشت. کاملا خسته شده بود و از قایق و دریا و هر چیزی که به اون مربوط می بدش اومده بود. دوستان عزیز تا اینجا یه قصه رو داشته باشید؟ انشاءالله ادامه ی قصه و این چه اتفاقی برای ویوگن افتاد رو در قسمت بعدی با همدیگه میشنویم. روز و روزگار خوش. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین‌های های سفر را کنین؟ جایی که پری ها و کتوله ها زندگی میکنن؟ کانال هزار افزان همونیه که دنبالشیه که دنبال. جایی که